فصل هفتم آخرین کوشش برای شکار کازیما کار خوهرمان باتیستا بود البته او این کار را هم مانند همه آنچه می کرد به ابتکار شخصی و پنهانی و بی نظر خواهی از دیگران انجام داد شپنگام با نردبانی و دیگچهی پر از چست به باغ رفت و درخت ارعری را از پایه تا نکش به چسب باقشت این همان درختی بود که کزی محربام داد رویش می نشست. چون این بود که یک روز صبح چشممان به آن درخت افتاد که گنجشک‌هایی به آن چسبیده بودند و پرپر میزدند. و بر جا به جای شاخه هایش چندین سار و پروانه یک دم سنجاب و حتی گوشه از لبه بالاپوش کزیمو چسبیده بود. آیا برادرم روی یکی از شاخه ها نشسته و سپس توانسته بود خود را از آن جدا کند؟ یا اینکه، تکی از جامعه خود را آنجا چسبانده بود تا ما را مسخره کند. این احتمال بیشتر بود. زیرا مدت ها می که بالا پوشش را به تنش نمیدیدم. هرچه بود، آن درخت به همان صورت چسبناک و چند شاور باقی ماند و سپس خشک شد. کم کم باورمان می شد که کزیما دیگر پایی نخواهد آمد. حتی پدرمان نیز دل سرد شده بود. از زمانی که برادرم همه ی درختان منطقه را شاخه به شاخه میپیمود، جناب بارون دیگر هیچ جافتابی جا نمیشد. چون میترسید که به عنوان دوکیش لطمه بخورد. چهرش روز به روز استخانی تر و رنگ پریده تر میشد. نمیدانم قصه ای که میخورد تا چه اندازه ناشی از مهر پدری و تا چه اندازه دیگر ناشی از نگرانیش درباره عنوان و امتیازهای اشرافیش بود. شاید نیز بتوان گفت که این هر دو مسئله در نهایت برای او یکی میشد کزیمو پسر بزرگ و وارس عنوان او بود و اگر برای یک بارون چندان زیبنده نباشد که چون میمونی بالای درختان جست و خیز کند برای یک دوک حتی دوک نوجوان از آن هم ناشایستر است با آن همه اختلاف نظری که درباری عنوان دوکی ما وجود داشت رفتار برادرم بیشک به زیان ما تمام میشد البته این نگرانی بیجا بود، زیرا مردمان امروزا به اینگونه گونه داهای پدرم اعتنایی نداشتند و اشراف ناحیه نیز او را دیوانه میدانستند اینان از همان زمان کاخها و قلعه های فعودالی را ترک کرده و در ویلاهای زیبا و خوشمنظر جا گرفته بودند. یعنی هرچه بیشتر می به شیوه مردمان معمولی زندگی کنند و از رابطه های پیچیده اشرافی بپرهیزند دیگر چه کسی به عنوان قدیمی دوک نشین امبروزا فکر می کرد. خوبی امبروزا در همین بود که قلم به هیچ کس نبود و همه آن را از آن خود می دانستند. البته خانواده ریوالونده که صاحب کمابیش بیش همه زمین های امبروزا بود هنوز امتیازهایی برای خود داشت. اما ناحیه ما سرزمینی آزاد و همگانی دانسته می و تابع جمهوری جنووا بود. از این رو، می توانستیم بی بی‌هیچ مسئله‌ای روی زمین‌های خودمان زندگی کنیم و آسوده باشیم. زمین‌هایی که بخشی از آن را به ارس برده بودیم و بخشی دیگر را از شهرداری در زمانی که غرق بدهی بود خریده بودیم. بیش از آنچه چه می‌خواستیم. ناحیه ما جامعه اشرافی کوچکی داشت که ویلاها و باغ‌ها و هایشان تا کناری دریا کشیده شده بود. یکدیگر را میهمان می‌کردند، به شکار می‌رفتند، زندگی گران نبود. از بسیاری از امتیازهای درباریان برخوردار بودیم، بیان که درد و مسئولیتها و حزینه کسانی را داشته باشیم که باید خانه شاهانه و سرمایه و زندگی سیاسی می داشتند. اما پدرمان از این همه هیچ بهرهی نمی گرفت. خود را مانند شاهی حس می کرد که تاج و تختش را گرفته باشند. خورده خورده با همه بزرگان ناهی قطع رابطه کرده بود. و مادرمان که بیگانه بود رابطه نداشت تا قطع کند. البته این وضع یک خوبی داشت. چون هیچکس به خانه نمیآمد نمی آمد، هزینه های میهمانی را سرفجوی می کردیم و می توانستیم بر وضع بد مالیمان سرپوش بگذاریم. رابطه من با مردمان اونبروزا هم از این بهتر نبود. میدانید که اونبروزایی ها مردمانی کما بیش پستند و تنها به منافع خودشان فکر می کنند. در آن زمان نوشیدن لیمونات در میان خانواده های دارا باب شده بود و لیمو رفته رفته گران می شد. همه جادرخت لیمو می کاشتند و بندرگاه را که در گذشته بر اثر یورش های دستان خراب شده بود بازسازی کرده بودند. منطقه ما با جمهوری جنووا قلمرو شاه ساردنی، فرانسه و زمین های پاب همسایه بود و مردم آن با همه این همسایه ها داد و ستد می کردند و به ریش همه میخند اما از خراجی که باید به جنوایی ها پرداختند بسیار نخوش و خشمین بودند و هر ساله هنگام پرداخت آن با مأموران جنوایی درگیر می شدند. هر بار که چنین درگیری هایی پیش می آمد، بارون روندو امیدوار می شد که تاج و عنوان دوکی را به او بدهند. این بود که در میدان شهر حضور می و داوطلب پشتیبانی از منافع مردم می شد. اما هر بار رگباری از لیموی گندیده او را وادار به عقب نشینی می کرد. آنگاه ادعا می کرد که باز علیه او توطعه شده است و راهبان یسوعی باز برایش نقشه کشیدند. همواره بر این باور بود که میان او و سلک یسوعی جنگی تا پای مرگ درگیر است و این سلک کاری جز آن ندارد که علیه او توطعه کند. ریشه این مسئله در دعوایی بود که میان خانواده ما و آن سلک درباره مالکیت باقی در گرفت. کار به دادگاه کشید و باران به خاطر رابطه خوبی که با اسقف داشت برنده شد و توانه سردسته راهبان یسوعی ناحیه را از آنجا دور کند. از آن پس همواره چنین میپنداش که سلک کسانی را میفرستد تا به جان و مال او تجاوز کند. خود نیز می دستی از مؤمنان را بسیج کند تا اسقف را که به گمان او اسیر دست آن سلک بود نجات بدهند از همین رو به همه کسانی که مدعی آزار دیدن از یسوعیان بودند پناه می‌داد و به همین دلیل آن کشیش نیمه جانسنیست را که همیشه در آسمانها سیر می‌کرد به سرپرستی ما برگزیده بود تنها کسی که پدرم به او اعتماد می‌کرد جناب وکیل بود. همان گونه نابرادری خود را دوست می داشت که کسی فرزند یکی یک و درمانده خود را دوست دارد. فکر می کنم در آن زمان شاید بیان که خودمان بدانیم تا اندازهی به شوالی کارگار رشک می‌باردیم. چنین می‌نمود که پدرمان آن برادر پنجه ساله را به ما که فرزندانش بودیم ترجیح می دهد. تنها ما نبودیم که از جناب وکیل دل خوشی نداشتیم. ژنرال و باتیستا هم با آنکه به او احترام می‌گذاشتند چشم دیدنش را نداشتند و او در پس ظاهر رام و سربزی‌رش همه چیز و همه کس را مسخره می‌کرد. بیشک از همه ما و حتی از باران که آن همه به او مدیون بود نفرت داشت. جناب شوالیه وکیلکارگا چنان کم حرف بود که گاهی کرولال یا بیگانه جلوه می‌کرد. خدا میداند چگونه توانسته بود در گذشته ها به کار وکالت بپردازد. آیا پیش از آنکه سر و کارش با ترک ها بیفتد نیز به همین گونه عجیب و غریب بود؟ شاید در گذشته ها آدم هوشمندی بود چون توانسته بود محاسبات پیچیده آبیاری را از ترک ها فرا بگیرد و این تنها رشته بود که از آن پس توانست به آن بپردازد. پدرم به خاطر کاردانیش در این زمینه از او به گونه ای غزافامی صدایش می کرد. هرگز از گذشته او چیزی ندانستیم و نفهمیدیم مادرش که بود و با پدر بزرگ ما چگونه رابطه ای داشت. گرچه گویا پدر بزرگ این پسر خود را نیز دوست می داشت زیرا به او امکان داده بود که حقوق بخواند و برایش عنوان شوالیه گرفته بود. نیز ندانستیم چه شد که گزارش به ترکیه افتاد. حتی درست نمی‌دانستیم که در ترکیه زندگی کرده بود یا در یکی از هر های بربرستان، تونس، الجزایر. اما اینقدر بود که گاهی گفته میشد که مسلمان شده است. چه چیزها که دربارش نمی نمیگفتند؟ از جمله اینکه گویا مقام‌های عمده‌ای داشته بود. از نزدیکان سلطان، کارشناس آبیاری دربار عثمانی یا چیزی شبیه این بود. سپس بر اثر توطئه درباریان یا بدخواهی زنان حرمسرا یا بدهی ناشی از قمار از چشم سلطان افتاده بود و او را چون غلام فروخته بودند. می دانستیم که او را در یک کشتی پارودار عثمانی که به دست ونیزیان افتاده بود پیدا کرده بودند. از پاروزنان آن کشتی بود و زنجیر به پا در ونیز کمابیش با گدایی سر میکرد، و سرانجام به زندان افتاد و دستگیریش به دنبال ماجرای ای بود که فکر میکنم زد و خرد بوده است. اما خدا میداند که آدم ترسویی چون او با چه کسی می توانست درگیر شده باشد. سپس پدرمان با پادرمیانی جمهوری جنووا او را اورا از زندان آزاد کرد و روزی از روزها او از راه رسید و عضو تازه خانواده ما شد. مردی کوچک اندام و تاس و نیمه لال بود. ریش سیاه و چهری وحشت زده داشت. لباس بسیار گشادی به تنش بود که داد میزد از آن خودش نیست. خیلی کوچک بودم اما روزی را که از راه رسید به خوبی به یاد دارم. پدرمان او را چون شخصیت والا مقامی به همه تحمیل کرد. عنوان سرپرستی املاکمان را به او داد و دفتر کاری در اختیارش گذاشت که همباره انباشته هم از کاغذ پاره بود. در آن زمان بسیاری از بزرگان و بوجوه ها در دفتر کار خود به تن می کردند و فینه به سر می گذاشتند. اما حقیقت این است که جناب وکیل هرگز در دفتر کارش نبود و با همان قباب و فینه در بیرون از خانه می گشت. رفته رفته با همان لباس ترکی بر سر میز غذا هم آمد و شگفت آنکه پدرم که همواره پایبند آداب و مقررات بود در این رفتار او چیز ناشایستی ندید. جناب شوالیه وکیل با آنکه عنوان سرپرستی املاک را داشت به دلیل کمرویی و کم حرفیش، شاید حتی یک کلمه هم با کارگران و کشاورزان زمینهایمان گفتگو نمی کرد. دستور دادن و سرکشی کردن و همه یه کارهای عملی به عهده پدرم اینه از کارگاه حسابدار ما نیز بود. درست نمیدانم که آیا خرابی وضع مالی ما ناشی از مدیریت او بود یا اینکه وضع بد ما کار او را دشوار می کرد؟ از اینها گذشته جناب وکیل گهگاه به طرح و محاسبه در زمینه آبیاری می پرداخت و تخت سیاه بسیار بزرگی را پر از خط و عدد و های ترکی می کرد. گاهی پدرم نزد او می رفت و چندین ساعت در را به روی خود می بستند. این دراسترین زمانی بود که جناب وکیل در دفتر کار خود میگذراند هر بار پس از اندک زمانی هم همه مگوی از پس در بسته به گوش میرسید که صدای خشماگین پدرم در آن مشخص بود و صدای شوالیه به دشواری شنیده میشد سرانجام در باز میشد و شوالیه وکیل همچنان که فینه خود را راست روی سر گذاشته بود و گامهای تندش در دامن قباگش گیر میکرد از در بیرون میزد و به میان کشزارها میرفت پدرم دنبالش میرفت و فریاد میزد؟ انا سیلویوس. انا سیلویوس ولی شوالیه در پس ردیف تاک ها یا میان درختان لیمو گم میشد تنها فین یه سر به چشم میامد که پیگیرانه در میان شاخ و برگ پیش میرفت پدرمان همچنان او را میخواند و دنبالش میدوید پس از اندکی هر دوشان را می دیدیم که برمیگشتند بارون همچنان با او بگو مگو و سر و دستگان میداد و شوالیه یک اندام با پشت خمیده در کنارش می و دستهایش را در جیب قبا مشت می کرد.